خب بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین السلام و السلام علی نبی نعوی آله تاقلی. خدمت عزیزان دانشوی خودم عرض سلام دارم و صبح خیر عرض می کنم و الله که از صحت و سلامت کامل هستید و از هر گونه آفتی هم به دور. خب بحث ما در تشبیه تمام شد. از اینجا بحث مجاز شروع میشه و توجه عزیزان رو به مباحث مجاز طلب میکنیم که کامل باشه که انشالله بتونید هم لذت از درس ببرید و هم داخل کلاس کاملا مبحث رو بیاموزید مجاز از کلمه جاز یجوز یعنی عبور کردن در مقابلش حقیقت که از حق یعنی ثبت یعنی ثابت شدن استوار بودن آه؟ پس حقیقت به نوعی سر جای خودشه مجاز به نوعی از جای خودش تکون خورده عبور کرده خب معنای لغوی رو بیان کردیم اما مجاز و حقیقت چیست اینجا مجاز رو معنا میکنه خب در معنایی که برای مجاز میکنه و بحثی که برای مجاز انجام میشه حقیقت معلوم میشه چون هرچی که مجاز نیست و شرایط مجاز را ندارد حقیقت است اما خب ما اگر بخوایم تعریفی برای حقیقت داشته باشیم چی میگیم؟ میگیم استعمال استعمال حقیقت رو گوش کنید که مجاز رو وقتی تعریف میکنم راحت بتونیم بگی استعمال لفظ در موضوع آن خودش استعمال لفظ در موضوع آن له خودش حقیقت نام دارد یعنی سر جای خودش بوزه الله یعنی چی؟ یعنی چیزی که این لفظ براش وضع شده مثلا لفظ اسب وضع شده برای چی؟ برای این حیوانی که معروف است اسب و برای من حالا اگر یک نفر اسب را کلمش رو تو همین معنا هم استفاده کرد و فلانی را دیدم برای اسب خود سوار بود واقعا هم عصبی داشته و سوارش بوده توشه حقیقت کلمه اسب در حقیقت خودش به کار پس استعمال لفظ در موضوع لحه خودش میشه حقیقت این نیاز به چی داره؟ که من بتونم یک لفظی رو در موضوع له خودش به کار ببرم فقط، و فقط نیاز به علم به وضع داره. نیاز به علم به یعنی من بدونم اسب برای چی وضع شده؟ قلم برای چی وضع شده؟ میز برای چی وضع شده؟ مرد برای چی وضع شده؟ کلمات رو و عبارات و الفاظ رو بدانم که برای چی وضع شده. بعد همون رو در همون معنای خودش که وضع شده به کار ببرم میشه؟ حقیقت نیاز به هیچ چیزی ندارد جز علم به وضع پس حقیقت رو فهمیدیم و میبینید که اکثر الفاظ اکثر الفاظ که ما به کار میبریم همش حقیقته یعنی الان های من رو گوش میکنید همه این الفاظ در معانی خودشون دارند به کار میرند و شما هم دارید متوجه میشید چون من این الفاظ رو میدونم تو فارسی برای چی وضع شده بلدم فارسی رو شما هم علم به وضع این الفاظ برای این معانی دارید و داریم با هم صحبت میکنیم پس استعمال لفظ در موضوع آن خودش میشه حقیقت و تنها چیزی که لازم است علم به وزق. این بحث بری کنار اما مجاز چیه؟ مجاز در عربی دو جوره یعنی نه در عربی ها در فارسی زبان حالا ما چون عربی داریم میخونیم میگیم عربی مجاز بر دو قسمه یک قسمش بهش میگن مجاز لغوی یعنی شما مجاز رو مینویسید بعد دو تا فلش میزنید یکی بالا یکی پایین با بالا مجاز لغوی پایین مجاز عقلی مجاز عقلی که بهش مجاز در اصناد مجاز در حکم مجاز حکمی مجاز اسنادی از اینها میگن ولی اسم اصلیش مجاز عقلی پس مجاز چند قسم شد مجاز لغوی مجاز عقلی مجاز عقلی اسمهای دیگری هم براش گفتیم ببینید ما تا مجاز لغوی را نخوانیم و انواع و اقسامش رو به مجاز عقلی نمیرسیم مجاز عقلی تقریبا شاید هفتش ده درس بعد پش می رسیم. که یه درسم هم هست و بعد از مجاز لغوی می خانیم. پس اون قسمت پایین که مجاز عقلیه میماند برای اینکه مجاز لغوی رو ما به طور کامل با انواع و اقسام و اقرازش بخواهیم شد خود مجاز لغوی لغوی یعنی از لغت گرفته شده خب این مجاز فقط لغت نیست گایی اوقات هم ترکیبه مجاز در ترکیبه یعنی در عبارته این مجاز لغوی همش در لغت نیست گایی اوقات در ترکیب هم هست و هم با اقسامش میخونیم درست شد پس بهترینه که اسم اینو بهش بگیم مجاز لفظی اگه بگیم مجاز لفظی خب شامل هر دو قسم مجاز چه در قسم بگید لغتش و کلمش چه در قسم عبارت و ترکیبش همش میشه حالا اینایی که میگن مجاز لغوی تقلیب دادن تقلیب باقیم اسم یه قسم رو گسترش دادن روی اون یکی هم بپوشونه اسم یک قسم رو گسترش دادن تا روی اون یکی رو هم بپوشونه چون مجاز در لغت باشه بیشتر از مجاز در ترکیبه لذا اسمشو گفتن مجاز لغوی ولی ما که خدمتتون ارز کردیم تشخیص بهتر اینه که اسم اینو بگیم مجاز لفظی حالا این مجاز لغوی و مجاز لفظی خب خودش دو قسمه باز دوباره یک قسمت فرش میزنید بالا یه قسمت فرش پایین مجاز لفظی مجاز لغوی دو قسمه یک قسم بهش میگن استعاره یک قسم از مجاز لغوی و لفظی رو بهش میگن چی؟ استعاره یک قسم دیگرش رو بهش میگن مجاز مرسل پس یک قسمش مجاز استعاره یک قسمش مجاز مرسل و ما تا زمانی که مجاز استعاره رو به طور کامل نخونیم که مهمتر است و بیشتر هستش مجاز مرسل رو نمیخونیم پس مجاز مرسل یه درس میشه آخر این تا درس مجاز لغوی الان ببین تقسیماتمون چی شد؟ مجاز به دو دسته تقسیم شد مجاز لغوی و لفظی مجاز عقلی گفتیم مجاز عقلی میمونه تا مجاز لغوی و لفظی تمام بشه بعد مجاز لغوی و لفظی گفتیم دو دست است یک دسته مجاز استعاره است که اول شروع میکنیم میخونیم با هم با اقسامش تموم شد دسته دومش که مجاز استعاره نیست بلکه مجاز مرسله اون مجاز مرسل یه درسه کمتره اونو آخر سر میخونیم شد. پس الان ساختار درسی خودمون رو که تو قسم مجاز میخواییم بخونیم اون فرمولش رو داریم برای شما بیان میکنیم که شما گم نشید تو عبارت یکی از چیزهایی که توی بحث هست اینی که شما بدونی داری کجا حرکت میکنی. خب حالا اگر از این ساختار بیایم بیرون که فهمیدیم چی میخوایم بخونیم آه خود مجاز لغوی مجاز چی؟ لغوی یا مجاز لفظی که بهتر بگیم عبارت هست, هست. مجاز لغوی و مجاز لفظی عبارت هست, هست. هر لفظی که استعمال شود در غیر موضوع انله خودش هر لفظی که استعمال شود در غیر موضوع انله خودش با وجود علاقه و قرینه و قرینه مجاز لغوی یا لفظی نامیده می شود این حالا تکمیلش می کنی. هر لفظی که چون من از حفظ میگم، ممکنه که اون بار اول شما می نویسید اگر برست دارید بار دوم ممکنه لفظ دیگری باشه جا جا بشه یک کلمه یکی یاد بگیرید هر لفظی که استعمال شود در غیر موضوع له خودش با وجود علاقه و قرینه مجاز لفظی یا لغتی است اولا میگه لفظ استعمال بشه در غیر موضوع له خودش یعنی لفظ مثلا اسب وضع شده برای اون حیوان الان ما اومدیم او رو در مورد مثلا فرض بفرمایید که یک الاغ داریم به کار میبریم یا این رو در مورد فرض کنید باد به کار میبریم در غیر موزون لر خودش اما هر کجایی که ما هر لفظی رو در غیر موزون لر خودش به کار ببریم بشه مجاز که نیست که اون موقع اگر این باشه هرچی رو سر جای خودش به کار نمیبریم میشه مجاز نه دوتا شرط اساسی داره دوتا شرط اساسی داره بله اون هر کسی هر چی رو جای دیگری به کار میبود. درست شدنه، نه گفت این قلم رو بخور بعد میگفتن آقا قلم برای نوشتن این قلم بخور یعنی چی منظورم از قلم ساندویچه اون که نمیشه که هر لفظی جای خودش میکار نره بشه مجاز نه اونشه غلط. اگر این دوتا شرط باشه میشه مجاز اگه این دوتا شرط نباشه میشه غلط میگه به ساندویش غلط خب غلطه خود نیست که ساندویچ غلط میشه این دوتا در واقع میاد غلط رو درست میکنه. میکنه مجاز استعمال لفظ در غیر موضوع خودش با وجود این دوتا که میگیم میشه مجاز یکی علاقه و دیگری قرینه علاقه چیه؟ علاقه رابطه بین معنای موضوع نه و معنای مستعمل فی هست پس علاقه چی شد؟ ارتباط بین معنای موضوع اصلی حقیقی و معنای مستعمل یعنی معنای مجازی این دو بینشون باید یه رابطه باشه یه علاقه باشه یه ارتباط باشه مثلا بین خودکار و ساندویش ارتباطی نبود رابطه بین این دوتا باشه حالا میگیم چطور علاقه پس رابطه تناسب مناسبت بین معنای موضوع و معنای مستعمل فیه هست اینو علاقه این علاقه دو جوره این علاقه دو قسمه یک قسم مشابهت یک قسم مشابهته که بهش میگن استعاره بهش میگن استعاره یک قسم دیگرش غیر مشابهته که بهش میگن مجاز مرسل، حالا فهمیدیم درست شد علاقه بین معنای موضوع له و معنای مستعمل کی دو قسمه یک قسمش مشابهت بهش میگن استعاره یک قسمش غیر مشابهت بهش میگن مجاز مرسل مجاز مرسل خب حالا مثال ها اینقدر زیاد میشه مطالب یاد میگیرید فعلا ساختار رو متوجه بشید قرینه قرینه یعنی یه چیزی که به ما میفهمونه که این کلمه در لای خودش به کار نرفته چیزی که علامت و به ما این علامت رو میده به ما این نشون میده که این کلمه در معنای خودش به کار نرفته یعنی یه تابلو میزنه گوینده میگه که من این کلمه رو در معنای خودش به کار نبردم در معنای خودش به کار نبردم اینو شما قرینه این دو قسمه قرینه دو قسمه یکی قرینه لفظی قرینه لفظیه اونی که تو خود عبارت هست یعنی شما می‌بینید ایران می‌گید خدمت می‌شه می این قرینه‌شه قرینه لفظی یکی هم قرینه غیر لفظیه قرینه غیر لفظی رو عقلی حالی، قرینه حالیه، قرینه عقلیه قرینه غیر لفظی بهش میده اصلش اینه، لفظی و غیر لفظی عقلی، معنوی، حالی بهش میده خب، مجاز لغوی، مجاز لفظی چند قسم شد؟ دو قسم یکی اونی که استعاره است دیگری اونی که مجاز مرسل استعاره بارش کدوم بود؟ اونی که علاقه بین معنای موزن له و معنای مستعملون فی بد. مجاز مرسلش کدوم بود؟ اونی که علاقه بین این دوتا غیر مشابه حالا استعاره خیلی بیشتر از مجاز مرسله در لفظ استعاره در لفظ خیلی بیشتر از مجاز مرسله به همین دلیل هم ما تو کتاب اول استعاره رو می‌خونیم بعد مجاز مرسل درستو قرینه هم گفتیم که دو قسمه یکی قرینه لفظی یکی قرینه غیر لفظی که عقلی معنوی حالی هم بهش درست شد حالا نگاه کنید قاعده کتاب رو من کامل برای شما یه روند و طی کردم قاعده کتاب ببینید المجاز و لغوی ما گفتیم که مجاز لفظی بگیم بهتره چرا؟ چون همیشه لغت مجاز نیست در این جاگاه یه اوقات ترکیب و عبارت مجازه اگه بگیم مجازه لفظی شامل اونم میشه المجاز و لغوی هوه اللفظ خودش میگه هوه اللفظ نمیگه هوه لغت. هوه اللفظ و و لفظیه که استعمال شده فی غیر معبوز علم لفظیه که استعمال شده در غیر موضوع در خودش لعلاقتن یک شرط عبار به خاطر علاقهی که بینه این معنای مستعمله و معنای موضوعه است. دو مع با وجود قرینه. قرینه مجاز، قرینه مجاز بهش میگن قرینه مانعه یا صارفه با صاد. بهش میگن قرینه مانعه یا قرینه صارفه. حالا این به این دلیله که بعداً خواهیم خوندی یه هم تو کنایه ما قرینه داریم که اونو بهش میگن قرینه کاشفه اون مال اونجاست اینجا ما قرینمون مانعه و سارفه است مانعه صارفه به یک معنیست یعنی چی؟ یعنی قرینهیه که جلوی اراده معنای حقیقی رو مانع میشه سارفه میگیره پس قرینهی که مانعت من ارادت من الحقیقی یه قرینه تو عبارت هست نمیگذاره که این لفظ در معنای حقیقی خودش به کار رفته باشه میگه وایس این اصلا در این معنا نیست علامت تابلوه تابلوئه که میگه این در این لفظ این لفظ در این معنای اصلی خودش به کار نرفته در معنای غیر اصلی به کار رفته معنای مجازی به کار رفته بعد علاقه رو نگاه میکنیم اگه علاقه مشابهت باشه میشه از نوع استهاره اگه علاقه غیر مشابهت باشه میشه از نوع مجازه مفسر مغلینت من ارادت المعن الحقیقی مل علاقه تو حالا همونهایی که من گفتم علاقه بین المعن حقیقی، معنای موضوع معنای حقیقی ول معن المجازی معنای مستعمل انفی معنایی که توش استعمال شده قد تکون المشابهت گای اوقات مشابهته که خیلی خیلی زیاده که اگه مشابهت باشه میگن چی استعاره و قد تکون غیر المشابهته غیرها و گایی اوقات غیرشه غیر مشابهه که اگه غیر مشابهت باشه میگن مجاز مرسل که کمتره بعد از مجاز استعاره اون ول و تو قرینه قد تکون و لفظیتن قرینه گاهی اقاد لفظیه که خیلی بیشتره قد و حالیتن گاهی اوقات قرینه حالیه است قرینه گاهی اوقات چیه؟ حالیه است که گفتیم به این حالیه، عقلیه معنویه هم میگن غیر لفظیه هم میگن قرینه گاهی اقاد لفظیه، گاهی اقاد غیر لفظیه. پس ببینید ما الان اون که به عنوان قاعده و مبحث باید برای شما بیان میکردیم من بیان کردم رو هم خوندم اضافه هم گفتیم یعنی چیزی که مانفوق این باشد هم برای شما بیان کردیم حالا از الان میخوایم شروع کنیم خوندن. این درسی که الان میخوایم بخونیم بالاش نوشته مجاز لفظی تو اینجا حقیقت و مجاز رو کلماتشو به شما نشون میده که یه جاهای حقیقت به کار رفته یه جاهای مجاز به کار رفته توی مثال یک دو سه مجازی که به کار رفته از نوع استعاره است توی چهارم مثالش که به کار رفته از نوع مجاز مرسله پس قسمت استعاره بیشتر از مجاز مرسله به خاطر همینه که استعمالش بگی بیشتره درست شد استعمالش بیشتره به همین دلیل ها؟ مجاز مجاز در نوع استعارش بیشتر از مجاز در نوع بگو غیر استهارش که مجاز مرسل باشن همینطور هم توی نموزج هایی که مثال زده تو نموزج ها باز سه تا مثال زده درست شو تعداد استهارش بیشتر از تعداد مجاز مرسلش من دو تا مثال برای شما میزنم از بیرون دو تا مثال این دو تا مثال به این مثال ها اضافه شه اون دو تا مثال رو من توضیح میدم بعد وارد خوندن مثال اینا میشیم مثال های کتاب رو بخونی و نموزش درس تموم میشه دیگه شما مبحث رو یاد گرفتید توی این مرحله الان این آیه را بنویسید کتابون انزلناه و علیکه کتابون انزلناه و علیکه لطخرجه لطخرجه انناسه من از من از ظلمات الان نور الان نور این مثال اول یا های قرآن کتابون انزلناه الیک لطخورج انناس من از ظلمات الان نور این مثال اولا توضیح بدم بعد مثال دوم. کتابون یعنی هاذا کتابون خبر مبتدا محذوفه یعنی این قران کتابی است خبر مبتدا محذوفه یعنی هازا کتابون این قران کتابیست. است خب جمله انزلناه صفت کتابه این قران کتابی است که انزلناه و الیک ما اونو نازل کردیم بر تو اینجا هیچی چی هنوز از همه حقیقت؟ این قرآن کتاب واقعا و خدا همینو نازل کرده بر پیغمبر انزلناه و چرا نازل کردیم اینو بر تو؟ لِمو متعلق و انزلناست لِتو خورجه انناسه. تا تو بیرون بیاوری خارج کنی مردمان را یعنی انسان ها رو، من و شمال. تا بر تو بیرون بیاوری مردمان را من از ظلمات ال نور از تاریکی ها به سوی نور، به سوی روشنایی. اینجا وقتی دقت کنیم، به قرینه کتابون انزلناه و علیکه لتخرجن من از ظلمات به قرینه که کتاب ماد به تو دادیم تا تو مردم رو خارج کنی میفهمیم که این ظلمت و نور حقیقت نواد باشیم چون قرآن برای این نیست که اگر مثلا ما یه جای بودیم سال بود تاریک شد به رفت اینو دستمون بگیریم مثل قوه بیایم بیرون میفهمیم که قرآن برای این کار نیست درست شد؟ پس بنابراین اینجا ظلمات و نور حقیقت نیست به چه قرینهی فهمیدیم؟ به قرینه کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس به این قرینه فهمید بعد میایم میگیم خب از ظلمات منظور چی اراده شده؟ ظلمات ازش چه اراده شده میگن زلالات، گمراهی گمراهیها از نور چی اراده شده هدایت میگیم او گمراهیها تشبیه شده به ظلمت و تاریکی در اینکه انسان حقیقی نمیتونه راه رو پیدا کنه تو گمراهی به مقصودش نمیرسه تو ظلمت و تاریکی هم به مقصودش نمیرسه یکیش فهمیدنی عقلی زلالات و گمراهی تشبیه شده به یه حسی برای اینکه خوب بفهمیم برای تغییر حال مشبه که خونده بودیم تشبیه شده گمراهی ها به تاریکی ها و همچنین هدایت تشبیه شده به نور. بعد مشبه ها رفتن نه تو کلام مشبه هم به به جاش امده. این استحار است خب بعد میگیم علاقه بین گمراهی و تاریکی بین نور و هدایت و نور علاقه بین اینا چیه؟ میگه علاقه مشابهت مردم گمراهی رو میگن مثل تاریکی میبینه هدایت رو میگن مثل نور رو روشنایی میمونه تشبیه میکنه پس اینجا ظلمات و نور مجازن در تاریکی و نور به کار نرفته واقعا در تاریکی و نور بلکه منظور از ظلمات زلالات است و منظور از نور هدایت است اینو بهش میگن از نوع اول و استعاره علاقه مشابهت بین معنای حقیقی که تاریکیه و معنای مستعمل که گمراهیه و همچنین بین معنای حقیقی که نور است و بین معنای مستعمل که هدایته مشابهت وجود داره تشبیه میکنه اینا رو قرینه هم کتاب انزلناه و این الان مجاز از نوع استعاره است. حالا چه نوع استعاره یه چطوری ساخته شده اونا رو بعد میخونه این یه مثال که یاد میگیرید مثال دوم رو نگاه کنید میگه یجعلون آیه قرآن یجعلون اصابه اهم با باستاد یعنی انگشتان یجعلون اصابه اهم فی آزانه هم آزان جمع اوزنه یعنی گوش فی آزانه یعنی چی؟ یعنی قرار میدهند این مشرکین و کافرین اصابه اهم انگشتان خودشون رو فی آزانه در گوش هاشون. اینجا به قرینه یجعلون فی آزانهم به قرینه یجعلون قرار می دهد. فی آزانهم در گوش هاشون ما میفهمیم فهمیم در معنای حقیقی خودش نیست میفهمیم فهمیم در معنای حقیقی خودش نیست چون عصابه یعنی انگشت از نوک انگشت که ناخون هست تا بیخ که به دست وصل میشه این حرفش سانت رو بهش میگن انگشت انگشت اینه دیگه سه بند داره این انگشته ما میفهمیم به ی یج یجعلون قرار میدهند فی آزانهم در گوشهاشون اینها نمیتونن انگشتان خودشونو تو گوششون بکنن اصلا امکان نداره که این انگشت توی گوش بره پس چی منظورش از ان قصابئه انامل انامل با همزه جمع انمله یعنی سرانگشت انامل اگر گفته بود یجعلونه اناملهم فی ازانهم حقیقت بود هیچ مشکلی دیگه نبود مجاز نبود ولی فرموده یجعلون اعصابهم فی ازانهم پس اصابه گفته و منظورش انامله اصابه وضع شده برای انگشتان ولی الان داره استعمال میشه در انامل به معنای سرانگشتان نوک انگشت باید بگه نوک انگشتان خودشون رو تو گوشاشون میکنن ولی میگه انگشتان خودشونو رو تو گوشهاشون میگن اینجا کل گفته شده و اراده جز آن شده ببینه علاقه دیگه اینجا جز و کله علاقه مشابهت نیز انگشت رو به سرانگشت تشبیه نمیکند، بلکه انگشت کله و سرانگشت جزء اوست این میشه مجاز مرسل علاقهش چی بود علاقهش جزء و کل بود کل بود و اراده جزء شد قرینه چی بود یجعلون فی اذانه این فرق جا اما هر دو لفظ مجاز شده لفظ حسابه وضع شده برای انگشتان الان داره در سر انگشتان به کار میره اونجا ظلمات و نور وضع شده برای تاریکی و نور اما الان داره در گمراهی و هدایت به کار میره اگر این دو تا مثال من رو فهمیدی که انشالله توضیح دادم و متوجه شدی حالا مثالهای کتاب رو میخونیم شبیه به همین است ولی به این شسترفتگی هم که من بیان کردم نیست چون شعره میخونیمش و شما راحت بتونید مطالب رو بفهمید دیگه ساده است بوشت. قال ابن العمید دو مثال قال ابن العمید ابن العمید کاتب پایین نگاه کنید هو الوزیر الفضل محمد ابن العمید نابغه فل ادب و علوم فلسفه و نجوم نابغه بوده در این علوم فقط بر ازافی کتابت اعلی اهل زمانی در علم کتابت نوشتار در ادب نابغه بوده بر همه اهل زمانش پیشی گرفت حتی قیل انقدرن بالا رفته که این طور گفته شده بوده عطل کتابتو به عبدالحمید و ختمت به ابن العمید کتابت عربی با عبدالحمید کاتب شروع شد و با ابن العمید کاتب پایان یافت یافینا کاتب دربار بودن و دبیرخانه دربار خلفای عباسی دست اینها بود گفته کتابت با او شروع شد و هر دوشون شنم ایرانی شد؟ تو با سند و ستید خب آقای ابن العمید ببینیم چی گفته میگه قامت تو زللونی. قامت یعنی استاد توزللونی یعنی سایه مینداخت بر من میستاد این تزللونی حال است از برای فائده که در حالی که سایه مینداخت بر من من از شمس سایه مینداخت از چی؟ مثلا یه نور افگنی بود نور این بود این جلوش وایستده بود،, بود میگه نه من از شمس از خورشید. فرض کنید که زمستانیست شما جلوی آفتاب نشستید آفتاب لذت است جلوش نشستید یه نفر میاد جلو شما بایی میسته چه اتفاق میفته سایش میفته رو شما این همینه میگه میگه قامت ایستاد در حالی که سایه منداخ بر من از خورشید آسمان قامت تذللونی و زمیرش میشه فاعل قامت اینو روش میگن باب تنازع یعنی قامت و تزللونی هر دو نفسون رو میخوان به عنوان فاعل عمل و دادیم به دومی تذللونی برای اولی زمیر مستطر کرد پس ترجمه چی شد ایستاد در حالی که سایه انداخت بر من از خورشید آسمان شخصی شخصی که اعحب و الیم نفسی یا و صفت نفسه شخصی که دوست داشتنی تر بود پیش من از خودم از جان خودم هم بیشتر اونو دوست داشتم شخصی که اونو از جان خودم هم بیشتر دوست داشتم خب این فعلا چیزی ما توش نداریم همه کلماتش حقیقته بیگه یه نفری من جلو آفتاب نشسته بودم اومد سایه انداخت بر من من اون شخصو از خودم بیشتر دوستش داشتم بعد دوباره میگه قامت تذللونی این تکراره خ خب. اسا برمن سایه اند. این مثلا کار عجیبی بوده تکرارش کرد. قامت توزللن. میگه خب جلو آفتاب وایسه سایه ام چطور شما میگه قامت توزللن؟ میگه و من ایستاد ایستاد و برمن سایه اند. در حالی که از اجایب و شگفتی ها این بود. میگه چرا هی میگم قامت توزل تو ایستاد و بر من ایستاد و برمن بر من چون تعجب کردم میگه از چی تعجب کردی میگه و من عجبن و از عجایب بزرگ اینه شمسون خورشیدی تو زلل و نیمه شمس خورشیدی آمده بود ایجاد سایه کرده بود در مقابل خورشیدی میگه میدونی چرای میگم وای ساده بود و سایه اندا. وای ساده بود و سایه اندا. میگه وای چی شده میگه خیلی عجیب بود میگه چرا میگه چون یه خورشید سایه انداخته بود در مقابل یه خورشید دیگه خورشید در مقابلش سایه ایجاد میکنن نه اینکه خورشید خودش ایجاد سایه کند میگه به خاطر این من تعجب کردم یه خورشید داش سایه مینداخت در مقابل یک خورشید دیگه الان شاهد ما تو این تیکه آخره شمسون تزلل و نیمه نشمس دو تا کلمه به کار رفته شمسون و الشمس شمسون اول صد درصد مجازه از نوع استاره هست اون شخصی که دوستش داشته زیبارویی بوده تشبیه کرده به خورشید که ما گفتیم انسان زیبارو به خورشید و ماه تشبیه شود به چه قرینه ما فهمیدیم به قرینه تزللونی چون خورشید واقعی که سایه نمی‌اندازه پس این خورشید مجازیه انسان زیبارویی حالا بین انسان زیبارو و خورشید چه رابطه‌ای هست علاقه مشابهت با هم خوندیم انسان زیبارو رو رو تشبیه میکنند به خورشید اما شمس دوم چی؟ توزلل و نیمه نشمس این حقیقته دو خورشید آسانان بر این نمیخواد یه نمیخواد در موضوع الله خودش بکار قامت توزلل و ایستاد و سایه انداخت بر در حالی که از عجایب شگفتیهای بزرگ بود اینکه خورشیدی سایه انداخته بود از خورشید دیگر حالا نگاه کنید بحث رو انظر ال الشتر العخیر نگاه کن به مصرای آخر فی البیتین الاولین در دو بیت اول تجد انّ کلمت الشمس شمس استضاملت فی معنیین. این می‌بینی که کلمه تا استعمال شده در دو معنا استضاملت فی معنیینه. اینه. اهدوها ما یکیش علم انل حدیقی یکیش معنای حقیقی خوشیده. البته تعریفها که تو می‌شناسیش. و هیلتی تظهر فی المشرق صبحا و تختفی در غروب مساهان با اون خوشیدی که میشناسی اینه که ظاهر میشه در شرق و آسمان در صبح و پنهان میشه به هنگام غروب و دیگه نمیبینیش شب میشه و تختفی در غروب مساع موقعی که غروب میکنه در مساه شما دیگه اونو نمیبینید تختکی. اما دومی چی؟ و سانی انسان و وجه دومی انسانیه با چهره نورانی یش بهو شمس که شبیه خوشید است در درخشش و ها زالمعنا غیر حزمی خورشید برای این معنا وزن نشود خورشید برای اون ستاره آسمانی وزن شد برای این معنا وزن نشود بلکه در این معنا داره استعمال میشه و ها زالمعنا غیر به و تامل تر عید و دقت کنی میبینیم انه هناکه سلطن و علاقتن که اینجا یه ارتباط و علاقه و سله رابطهی هست بین المعنه الاصلی یعنی اون معنای موزن له شمس و المعنه الارز و معنای آرزی یعنی مستعمل و مجازی الازی و و ها زهل علاقت و هیل مشابهت و علاقه مشابهته چون انسان با چهره نورانی رو تشبیه به خرشید لعن نشخص زیرا شخصی که الوزی الوجه چهره نورانی داره یشبه او از شمصف اشراق شبیه به خورشید است در اشراق و درخشش میگیم آقا اشتباه میشه اون موقع که شما خورشید میگی ازش اراده خورشید آسمان میکنی و خورشید میگی ازش اراده این آقای خوشچهره رو میکنی خب ما اشتباه میکنیم میگه نه نه نه اگر نگاه کنی میبینی ما برام مجازه تابلو گذاشتیم نه تابلو مانع از اراده معنایی از متزلللونی اجازه نمیده تو معنای حقیقی اراده کنه مگه خورشید آسمان سایه ایجاد میکنه پس اشتباه نمیکنیم. ولا کن و آن یلته بساله ممکن نیست که مطلب بر تو مشتبه بشه. فتفهم تف همه من شمسون تو پس تو اوم موقع آم مشتبه بشه و تو بفهمی بلایم کن و آن یلته بساله تف من شمسون تو زلزلونی ام اند هری شمس میشه تو از شمسون تو خورشیدی که سایه میانداه شما خورشید واقعی بفهمی نه مثلا میگن آقا توزللونی خودش قرینه است که این خورشید خورشید واقعی نیست دیگه خورشید واقعی که قرینه توزللونی نمیتونه داشته باشه صفتش توزللونی نیست بلایم کن ایل تا به ذلایکل امر و تفهم من شمس تزللونی المعنن حقیقی الشمس نه ان الشمس الحقیقیه لا تزلل همه میتونن خورشید واقعی که سایه نمینداسه تو توزللونی ازن پس کلمه توزللونی در این هنگام تم نعومن ارادت المعنه العقی مانع میشه از اراده معنی عقی چلوی معنی رو میگیره و لحاظا توسما قرینه تن و به خاطر همین نامیده میشه قرینه قرینه تن دالتن. یه قرینه که دلالت میکنه علا انل المعن المقصوده خوب المعن الجدید و العارض قرینه میشه قرینه‌ای که دلالت میکنه بر اینکه ان المعن المقصوده اینکه اون معنای مورد نظر هو فقط و فقط المعن الجديد العارض اون معنای جدید آرزه که اون شخص خوش چهره باشه یعنی عزیز شمس فقط این فهمیده میشه شخص خوشچهره اما شخص خوش که به خاطر اینکه خیلی خوش بوده تشبیه کردیم به خوشی اینو فهمیدید یه شمسون توش بود تزلل و به قرینه تزلل مجاز بود یه نم منع شمس داشتیم کاربرد شد بود قال البهتوری حالا آقای بهتوری گفته یسف و مبارزته الف فتح ابن خاقان بهتوری داشته توصیف میکرده مبارزه و کشتی گرفتن فتح ابن خاقان رو با شیر این پادشاهان یه گودالی رو درست میکردن داشتن پشم گردن زبیه با زهرهی و شیر تو اون مینداختن شیر نگه میداشتن تو این گودال بعد هم با این شیرها بازی میکردن کشتی میگرفتند. و این شیر مثل حیوان نگهداری شدنده توسط اینها بود همین که مخالفین خودشون یا کسانی رو که میخواستن زر چشم بگیرن، گاه مینداختن جلوی این شیرها این فتح ابن که پهلوان مانندی بوده رفته بوده داخل این گودال و با یکی از این شیه کشتی میگرفته مبارزه می‌کرد. آقای بهتری اینو دیده و به نظم داره برده خب فهمیدیم که داستان چیست خوب دقت کن میگه فلم ارز زرقامین فلم ارز از دقم ندیده من دو شیری را که از دقه منکما راستکی تر باشن از شما دوتا یعنی شیری واقعیتر از شما دوتا من ندیدم این یعنی شیر زرقامه یعنی دو شیر یعنی اصده این از دقه صفتشه منکما از شما دوتا این منکما کیه؟ فتح ابن و او شیره میگه دوتا شیر درست حسابی تر از شما من تا حالا ندیده بودم اراکن اراکند یعنی معارکتن یعنی از جهت مبارزه از جهت مبارزه دوتا شیر باشن راستکی تر از شما درست حسابی تر از شما من ندیده بودم افل و نکس و نکسو کذبا می که الحیابه یعنی آدم ترسو انکس یعنی آدم ضعیف کذ زده تکذیب کنیم میگه در وقتی که آدم های ترسو و ضعیف تکذیب میکنن برو بابا شیر شیر تو دیدی شیر رو ببینین قش میکدین میگه گرچه اینا باور نکنن تکذیب کنن بگن نه ما باور نمیکنیم میخوان باور بکنن میگن نکنن من دو تا شیر واقعی تر از شما تو مبارزه ندیدم ازل حیا وت نکسو کذب از زرقان پایین میگه ال اسد ال حیاه مبالغه است دیگه از هیبت یعنی خوف مثل علامه سی روی مبالغه است یعنی جوان نکس اونم صفت مشبهه است یعنی ضعیف پس چی گفت گفت من دو تا شیری که درست حسابی تر از شما باشه تو مبارزه ندیدم هنگامی که الهیابت و از کذبا هنگامی که آدم های ترسو و قرد ترسو و ضعیفی کنه بکنه ولی من تو حالا ندیدم حالا هزبرون, هزبرون همون هزبر فارسی خود هزبرون یعنی شیر. هزبر اسم دیگر شیر. هزبرون مشا مشا یعنی حرکت کرد یبخی یعنی یطلب با طلب میکرد. کرد شیر دیگری را میگه شیری راه افتاد طلب میکرد در حالی که به مبارزه می طلبید شیری را یه شیر راه افتاد شیر دیگری رو به مبارزه می طلبید و اقلبوند و اغلبان اغلب عقلب باز اسم شیره و شیری من القوم از انسانها از این جماعت و شیری از این انسانها از این جماعت یقشا یقشا یعنی پوشنده بود و لی لیزا یقشا یعنی شب کرمجار فراند و شیری از این جماعت پوشانده بود با الوجه وجه اغلبا یک شیر کریه چهره ای رو خوفناکی رو یقشا اقلبن این اغلب مفعول یقشاست این باسل الوش حال است از برای اغلب صفت بوده مقدم شده میشه حال. پس میگه شیری از این انسان ها پوشانده بود، به رو افتاده بود اون انداخته بود، افتاده بود روش مثل کشتگیرها که یکی زیر میمونه یکی روش میفته و شیری از این انسانها پوشانده بود شیری دیگر را در حالی که اون شیر چهره وحشتناکی داشت بازل الوجه یعنی کریح الوجه. یعنی شهرش خیلی ترسناک بود بوده دیگه اینجا تو این بیت دوم دوتا تا هزبر داریم هزبر مشا قی شیری شیری راه افتاد در حالی که می تلبید شیر دیگری را. ما میفهمیم شیر اول مجاز شیر دوم حقیقت چرا چون این شعر در, مد... م... فتح... چی؟ در مده فتح ابن خاقانه و این فتح ابن خاقانه که رفته طرف شیره برای که اونو به خاک بماله ماله میگه مشایب غیب پس این باید فتح ابن خاقان باشه در اونو مده میکنه. میگه فتح ابن خاقان که مثل شیر بود راه افتاد طلب میکرد شیر جنگلی رو تو دومی میگه و اغلبون و شیری این قرینه لفظی داره منالغوم شیری از این انسانها خب شیر که از جنس انسانها نمیشه این منالغوم نشون میده شیری از جنس انسانها یعنی انسانی شیروار شیرگونه و من منالغوم و شیری از این انسانها یقشا به رو افتاده بود با الوجه اغلبا بر شیر دیگری که چهره وحشتناکه و بو چهرهی شیر دیگری که چهره وحشتناکی داشته بود این شیری از انسان‌ها بر روی افتاده بود اون حیوان درنده بود. پایین نگاه کنید میگه الحضر الازد ول اغلب و ایزن ول باسل الشجاع درست باسل یه جا به معنای شجاعه ولی یه جاهای باسل به معنای وحشتناکه کریه اینجا از اون رسمه نمیخواد بگه شجاع چهره بلکه میخواد بگه کریه چهره مخوف چهره ترسناک بازن کلمش دو معنا دارد این یکی از معنی شده, شده خب نگاه کنید بریم تو متر. میگه ورزا تعمل تا البیت ثانیه اگر بیت دوم بهتوری رو نگاه کنی رعی عن همه کلمته زبرن میبینی که کلمه زبرن از ثانیته یراد و به ها الاسد الحقیقی از اراده هاسد حقیقی شده شیران و ان کلمته هزبرون زبرون اولا یراد و به ها الممدوح و شجاع منظور فتح ابن خاقان ممدوح شجاع و هازا معنی غیر و حقیقیه این معنای غیر حقیقیه و علاقه مشابهت برایت و میبینی باز چیا میبینی؟ برایعی ان که انل بین معل حقیقی نظ از و معل آرز مشابهت و فجاعت معایی که که بین معناهزیه شیر یع یعنی نه حیوانه درنده و بین معنای آرزش که اینفتاطخواوانش وجاعتش وجاعت باعث شده که فتح رو بش بگیم شیر یا مشابهت و فشجاعت. و انل غرینت المانه من ارادت المعنى الحقیقی لن اسد غرینهی که مانع شده که شما اراده معنای معنى از اسد رو بکنید در اون هزبرون هیا انل حال المفهومه بزیاغ الكلام تدل على انل مقصود المعنى آرزو شما وقتی شعر رو نگاه کنید با توجه به اینکه در متحه فتح ابن خاقانه متوجه میشید که این فتح ابن خاقانه که باید مشایبغی بشه به طرفه بگو هزبر پس بنابراین این این حال و سیاق جمله دلالت میکنه که هزبر اول فتح ابن خاقانه هزبر دوم شیره چون شعر در متحه فتح ابن خواغانه. و انل غرینت المانعت من ارادت المعنى الحقیق للعصد یعنل حال المفهومت اون حالیه که فهمیده میشه از سیاق كلام که دلالت بگونه بر اینکه که مقصود از هزبر اول المعنى الارس و مثل ذلك یوغانو فی اغلب منالغوم اما به اغلب منالغوم قد اینش من الگوم. و باسل الوچه اغلبا این هم که اصلا معنی حریقی به کار لفته قرینه هم نمیخواهید در معنی. فا این نسانیتا تدول دو حلال معنی الاصلی دل اصد. دوبامی باسل الوچه اغلبا دلالت بر معنی الاصد واقعی رو میکنه بل اولا اما کلیبه اول تدول دو حلال معنی دلالت بر معنای الارز میکنه اون او رجل شجاع یعنی فتح ابن خوابان. والعلاقه المشابهه علاقه باز مشابهت و القرينه و من اراده المعنى الاصلي هنا لفظيه تون و من قم قرینه اینجا قرینه لفظیه و عبارت است از من قم اما تو اون قسمت حزب المشابهه حزب رن درست شد اونجا قرینه قرینه عقلیه قرينه دين لفظیه. ما از نظر عقلی متوجه میشیم که چون این شعر در مده فتح ابن خاقانه پس این فتح ابن خاقانه که باید بره یقه شیره رو بگیره پس هزبر اول میشه فتح ابن خاقان هزبر دوم میشه اون شیری که از حیواناتی بوده که اون نگهش میداشته حالا بریم سر مثال سوم راحت اینا نگاه کنید و قال المتنبی. متنبی شعر گفته فقط سقط مترن علا سیف الدولت. متنبی داشته با سیف الدوله که دوستش داشته با خلیفه بوده در حلب حلب سوریه سیف الدوله علی بن حمدان این متنبی در خدمت او بوده و برای او مدح میگفته با همدیگه دیگه داشتن راه میرفتن بعد ابر آسمان چند قطره باران انداخته بر روی سیف و دوله اون نیست دو نفری داشتن بیرون راه میرفتن باران باریده بر سر و صورت سیف دوله درست شد زمینه شعر بفت بعد سیف و دوله که داشته راه میرفته با متنبی چه هیعتی داشته؟ حیعت پادشاهانی که لباس رزم به تن میکردن شمشیر خیلی گران قیمتی به کمر بسته بودن پس الان تونستید تصور کنید که چه چشک بوده؟ متنبی با سیف و دوله دارن بیرون کاخت و حلب تو فضای باز راه میرن؟ سیف الدوله لباس رعز پوشیده شمشیر هم به کمرش لباس پادشاهی شمشیر خیلی گران قیمت به کمرش بسته. تو این فضای باز که با راه میرن باران بارید و بر سر و صورت سیف الدوله ریخت خب اینو تا اینجا داشته باشید بعد شما میدونید که خوندیم با همو تو جلسه قبل انسان کریم رو تشبیه گفتش به چی میکنن به عبر آسمان درسته نیست میگفت انسان کریم رو تشبیه میکنن به عبر آسمان اینو دیدیم خوندیم بعد یادتون باشه باز خوندیم که میگفت انسان کریم رو تشبیه میکنن به شمشیر از شهم المازی کسی که با شهامت از دو قاطع از المازی فل امور موقع از شهم المازی فل امور به سیف تشبیش میگن به شمشیر این هم میدونیم یعنی میدونیم که انسان با شهامت که قاطع در کارهاست تشبیه میشه به شمشیر و میدونیم انسان بخشنده تشبیه میشه به ابر آسمان و بعد هم اون سکانسی رو که سیف و دوله و متنبی اومده بودن بیرون از کاخ داشتن راه میرفتن و باران بر صیف و دونه بارید در حالی که لباس پادشاهی پوشیده و شمشیر به کمر بسته بود را هم من برای شما توضیح دادم. حالا که اینو فهمیدید این دو بیت رو با هم بخانیم متوجه میشید که من چه گفتم میگه نعینی متروی میگه لعینی برای چشم من کل یومن در هر روزی این چشم من در هر روز منکه از جانب تو حزن بهرهای داره میگه این چشم ما مثل اینکه هر روز از طرف تو باید یه بهرهای بهش برسه یه کپنی داره انگار هر روز باید از تو یه چیزی ببینه و چی گفت گفت چشم ما گویا این طور بهره بهش رسیده این طور کپون دارد از جانب شما که هر روز از تو یه چیزی ببینه یه بهله ای از تو ببره هزون تهیر منهو این تهیر یعنی ت تهیر یکی از تاهاش هست شده مثل تنزل الملائکتون تهیر و منهو فی امر ناجابی این جمله تهیر و سفت هزه برای چشم ما من در هر روز کل یومن از جانب تو بهره است که متحیر می شود چشم من از اون بهره منهم خورده بهز از اون بهره در امر عجیبی میگه چشم ما هر روز باید از جانب تو یه چیزی بهش برسه که چشم ما حیرت زده بشه از اون بهره در امر عجیبی هر روز چشم ما باید از تو یه چیز عجیب و غریب ببینه و متحیر و گیج تو بشه فهمید شعر چی گفت برای چشم ما در هر روز از جانب تو بهره ایست که متحیر و گیج میشود از اون بهره در امری شگفتانگیز شعر رو براتون با قد مقد برادید اینجاش اینجا چی نیست؟ درست شد؟ میگه تحییر و پاییم میگه اصلاحات تحییر و حضفم اینها اهدت تا این یکی از دوتا تا, تا حضر که در باب تفاعل تفاعل تفاعل در مزارع معلومش اگر دوتا تا, تا جمع بشه جایز یکیش حضر خب امروز چی دیده؟ امروز چه چیز عجیبی دیده؟ میگه امروز این بوده همالت و حماله یعنی قلاف همالت زل زلهسام این زا یعنی هازا موهای حرف تمیه چونه ای وارده یعنی هازا یعنی شمشیر این زل زلهسام یعنی این شمشیر دستش گذاشته رو شمشیر سیپاد گفته همالت و زلهسام الا حسامه امروز چیز عجیبی که دیدیم اینه غلاف این شمشیر رو دست گذاشته رو شمشیر سیپاد داده. اشاره کرده بود غلاف این شمشیر رو بستن بر یک شمشیر دیگری امروز ما ببینیم شمشیر رو شمشیر بسته شده خب و موقع زست صحاب زا باز اسم اشاره است زا یعنی این اشاره کرده به ابر حاسمون عبری که بالای سرشون بود موقع یعنی محل وقوع و محل وقوع این عبر این ابر حاسمون علا صحابن بر عبر است. میگه امروز چیز عجیبی که دیدیم اینه شمشیر رو میبینیم بستن رو شمشیر ابر داره بر عبر میباره این شمشیر رو بستن بر شمشیر دیگری و این عبر آسمان داره میبارد بر عبر دیگری فهمیدیم نه؟ خب زلحسام منظورش کیه؟ غلاف این شمشیر یعنی همون شمشیر سیفالدوله علاء حسامنی حسام دوم کیه خود سیفالدوله که انسان شجاع از شهم المازی فل امور تشمی میشه به شمشیر میگه غلاف این شمشیر امروز ما میبینیم رو شمشیری بستن یعنی رو سیفالدوله ای که مثل شمشیره و موقع از صحاب و محل وقوع این ابر آسمان این ابر آسمان ابر واقعیه الا ثواب بر ابر دیگریست این عبل دیگه کیه؟ سیف است که انسان کریم تشمیح میشه به عبر آسمان همالت و سیفه ما یهملو اون چیزی که شمشیر باش هم میشه یعنی قلال نگاه کنید ساده است تستتی و بعد هازل بیان بعد از این که دوتا مثال یک و دو رو خوندیم تستتی و بعد حاضر بیان انتود رکفن بیت سنان متنبی. این متنبی. اینکه که بفهمی در بیت دوم متنبی ان لکلمت حسام از ثانیته این که کلمه حسام دوم استعمال شده در غیر معناها حدیقی استعمال شده در غیر معنای خودش. قدش لعلاقت المشابهته به خاطر علاقه مشابهت تی تحمل رختار در این که تحمل میکنه کارهای سخت رو کارهای خطر و شگفت رو و سخت رو انسان تشمیح میشه به شمشه ولقرینه تو طفح المقام قرینه از مقام فهمیده میشه به اینکه اشاره کرده این شمشیر ولقرینه تو قرینه لفظی نیست طفح همومن المقام تهیه حالی نیست و مثل ذالک تو صحاب و مثل همین هست کلمه صحاب کلمه کلمی صاحب آخر، فاعل و اصلاً دست دل صیف دولت استعمال شده تا دلالت بر صیف دولت کنه، لعلاقت مشابهات بازم به خاطر علاقه مشابهات بین او و بین صاحب فلک مشابهت بین او و بین عبر در کرم بل غرینتو حالی گونه، تمام شد. این استان مثال همش توش. هم حقیقت به کار رفته بود هم مجاز و مجازش از نوع علاقه مشابهت بود و استعاره حالا گاهی اوقات قریدهش لفظی بود گاهی اوقات قریدهش غیر لفظی بود اما مثال آخر مثال آخر از نوع مجاز مرسله علاقش غیر مشابهته علاقش غیر مشابهت مثل یا چه الون فی آزان هم که علاقش غیر مشابهت بود من گفت نگاه کنید و قال البهتوری باز آقای بهتوری گفته میگه ازرل عینو راحت میگه زمانی که چشم انسان راه بیفته راه بیفته یعنی چی؟ یعنی اشکش روان شدید درسته؟ یه کسی که جوان باشه هیچگونه مشکلی نداشته باشه هیچگونه مشکلی نداشته باشه اوزاش خوب باشه خب شما نگاه کنید میبینید نشسته سر در گریبان گرفته و به قول خودمون داره عشق از چشماش میفهمید می درونش چه خبر است که عشق داره میرسه این عشق افشا میکند سر درون را میفهمونه که او عشقی در درون دارد و او سوزان است و داره این عشق روان میشه این عشق میشه جاسوس نسبت به اون عشق درونی جاسوس چیکار میکنه میره اون پنهان رو جاسوسی میکنه میاره افشا میکنه برای اون کسانی که میخواد میگه اینم هم همینطوره میگه ازل عینو راحت. این عین اول چیه؟ واقعیت چشم. زمانی که چشم بگرید راحت یعنی بکت بگرید خمیم چشم آجر. و هیا عینونه و حالانکه که او عین نیست، چشم است بر الجوا یعنی جوا یعنی ال اش. جوا یعنی سوزش. میگه زمانی که چشم چشم انسان بگرید در حالی که او جاسوسی میشه چشمی میشه بر عشق درونی این عین دوم معناش چشم نیست گرچه میگیم و او چشمی میشود بر عشق درون منظور یعنی جاسوس میشه این کلمه عینون دوم یعنی جاسوس به خاطر همینم که حالت مشتق داره سیغه مبالغه جاسوس سیغه مبالغه از جسست دیگه یه یعنی علل جواه متعلق به اینانه جاسوسی می شود بر عشق درون وقتی که چشم گریه کند در حالی که جاسوسی باشه بر عشق درون این جواب ازاس فلیسه به سرن ما تو سرن پس دیگه سر باقی نمی مونه. راز باقی نمی مونه. آنچه که توسر رو یعنی تخفی تو رو یعنی تخفی مخفی میکنه آنچه که مخفی میکنه دنده ها, دنده ها. یعنی اونچه که در دنده ها یعنی در سینه منظور از ازاله یعنی سینه آنچه در سینه پنهان شده دیگه سر نمیماند مخفی نمیماند راز نمیشه این راز باشکار میشه وقتی چشم گریه کند جاسوسی میشود بر عشق درون دیگه اون عشق دورون که رازی بود در سینه او دیگه مخفی نمیماند این راز فاش میشه. فلیس به سرون ما توسر رو او. یعنی فلیس ما توسر سر عزال او. یعنی ما و سر عزال او سرون. اون بایی به سرون هم بایی است که به خبر خبر نیسته یعنی فلعی سما ما سر روهو ما تخفیه و یعنی از صد رو سر رن. دیگه سر باقی خب شاهد ما سر این اوله که معنای حقیقی خودش رو چشم گریه میکنه این دومه که منظور جاسوسه خب حالا جاسوس یعنی یه انسان از او تعبیر شده به جزش یعنی چشم ها؟ جز و اراده کل گفته و اراده کل, کل کرده برخلاف اون مثالی که از قرآن من زدم که کل و گفته بود عصابه و اراده جز کرده بود اینجا جز او گفته و اراده کل کرد. بین جز و کلم علاقه مشابهت بگید نیست علاقه مشابهت نیست علاقه جزئیت درست شو نگاه کنید اما بیتون بهتری فمعناهو معناش اینه ان عین انسان اذا اسبحت به سبب بکایها جاسوسن الاماف نفسه من وجدن و حضن اینکه چشم انسان هنگامی که بشود اسبحت به سبب بکایها به خاطر گریهش جاسوس بشه بر آنچه که در نفس انسان دل انسانه من وجدن و حضن وجد یعنی سوزش اش حضم یعنی غم از عشق و حضم که و که در دل انسانه جاسوسی کنه اون اشت فه نه پس بنابراین فه نه ما تن یعنی تشمدو آنچه که شامل است بر اون تحتوی خاوی هست بر او نفس ما من از این وجد و حضم لایکون و سرون پس دیگه اونچه که در دل ما پنهان است از عشق و غم درست شد دیگه اون نمیتونه سر مکتون باشه هر کشکی ببینه متوجه آتش درون میشه فانت تر ان کلمت ال عین ال اولا تو میبینی که کلمه عین اول استعمل شده معناها معنای استعمال شده در معنای حقیقی خودش و ان کلمت عین از ثانیه استعمله جاسوس و اینکه کلمه عین دوم استعمال شده در جاسوس و هوه غیر و معناه ها و این غیر معنای اصلیشه اصلی شد ولیکن ولی لعنل اینه جزء اون منال جاسوس چون چشم جزی از جاسوسه و به های و با این چشمه که جاسوس جاسوسی میکنه ما هر جز ای رو نمیاریم و ازش اراده کل کنیم چشم برای جاسوس چون چشم تو جاسوسی نقش اوله داره درست شده نه؟ هر جزئی تو اون کاریه مثلا اگه گفتیم فلانی مخ کلاسه یعنی عالم کلاسه چرا چون مخ در عالم بودن فلانی زبان کلاسه منظور یعنی سخنگوی کلاسه یعنی ناطق کلاسه سخنور کلاسه چرا چون زبان در سخنوری اینه که اینا رو خواهیم خوند من فقط خواستم توضیح این مطلب رو داشته باشیم که ولکن ولکن لعنل این جز آن من الجاسوس چون این جزی از جاسوسه و به های و جاسوس با اون کارشو انجام میده اطلقها ها چشم رو گفته و اراده الکل و اراده کل رو کرده شعن العرب مثل همه عرب فی اطلاق الجزء و ارادت الکل که جز میگن و اراده کل میکنن در جز ای که نقش اصلی در اون کل داشته باشه تو اون کاری که میخواد انجام بده و ان ت و اندله علا وته بین العین و لیست المشابهت مثل اون قبلی ها مشابهه نیست و ان ماهیه الجزئیته بلکه جزئیته و القرینه قرینه اینجا چیه میگه علل جواب قرینه علل جواز فهیل نفساتون میگه چشمی میشود بر عشق دورون چشم میشه بر عشق دورون و سوزش عشق درون خب میفهمیم یعنی که جاسوس میشه نسبت بود و یتزه و روشن میشه من کل ما کردم از همه اون مثال هایی که ما گفتیم و منم مثال زدم انل کلمات این که کلمات شمس و هزبر و عقلب و حسام و صحاب و عین این کلماتی که تو این عبیات خوندیم از تو غیر معناها علا استعمال شدن در غیر معنای حقیقیشون لعلاقتن و ارتباط به خاطر علاقه و ارتباط و سله بین المعنه الحقیقی و المعنه آرز بین معنای حقیقی معنای موضوعان و معنای آرز یعنی معنای مستعملون و توسن ما کل کلمت منحازهی مجازا لغویین هر کدوم از اینها رو بهش میگن مجاز لغوی که ما گفتیم اگه بگیم مجاز لفظی بهتر ببینید ما الان در رابطه با حقیقت و مجاز یه مباحثی رو با شما انجام دادیم. سه مثال نموزج رو من میخوام براتون نگه دارم که اول جلسه آینده بخوانم که یه مقدار تکرار بشه مبحثم بعد از اول جلسه آینده این درس رو یاد بگیرید های امروز رو گفتم مباعث تشبیح را بخونید از اول جلسه آینده بحث استعاره و تقسیمات آن شروع می شود آه؟ یعنی اولین بحثی که می کنید بحث چیه؟ آه؟ الان خوندیم الحقیقت و المجاز المجاز و لغوی. شماره نداشت شماره نداشت این مثل مقدمه بود که خوندیم اولیش میاد الاستعاره و تصریحیت و مکنیه بحث استحاره از تفسیر میکنیم درس یک شروع میشه بحث استحاره تا میخونیم تا استحاره تموم میشه بعد یه درسم بحث مجاز مرسل رو میخونیم تمام میشه کلن مجاز تمام مجاز لفظی بعد میریم مجاز عقلی خونده میشه یه درس تمام میشه مجاز به طور کل میره کنار کل داستان و ساختار همین از پس انشاءالله تعالی حواستون رو جمع بکنید که بتوانید با قول خودمون با ما حرکت کنید این درس کمک شما حتی در فهم مطالبی که میشنوید هم خواهد کرد تو زندگیتونم به دردتون میخوره پس بنابراین از شما تغاضه دارم که خوب مطالعهش بکنید و من هم با تکرار زیاد و سرعت کم دارم میگم که شما بتونید خوب جمع جورش بکنید امتماس دعا همه به خداوند صبحان محفظ و معید و منصوب باشه.